بله همانطور که میدانید در حال حاضر تبلیغات شرکت کنندگان در انتخابات روز جمعه در جریان است و به همین دلیل همکار گرامی هم خوانگار واحد غیرمرکزی به سطح شهر رفته تا از این تبلیغات گزارشی تهیه کنند همکار گرامی هم اگه صدای بندر دارید بفرمایید که شما الان کجایی دقیقاً بله همکار گرامی بله. من متوجه شدم که گروه دلوپردان یک بله بله. جلسی فوری انتخاباتی برگذار کردن خب. و به محل این جلسه اومدم تا شما رو در جریان آخرین تحولات قرار بدم همکار گرامی خب به همکار گرامی ما رو در جریان آخرین تحولات قرار بده دیگه همکار سخنگوی این گروه بعد از پایان جلسه اعلام کرد که شنبه تعطیله. جان چی شو؟ شنبه تعطیله؟ یعنی چی آ همکار گرامی شنبه؟ خلا همکار گرامی اینجوری که سخنگوی اینا اعلام کرد اینا تصمیم گرفتن شنبه رو تعطیل اعلام کردن همکار گرامی. یعنی چی مگه اینا دولت‌ها همکار گرامی همینجوری نمیشه که هر گروهی تصمیم بگیره یه روز تعطیل باشه که خب یکی از تایفتیک های انتخاباتی خب. این گروه ظاهران اینه که به صورت تبلیغات دهان به دهان به مردم بگن شنبه ترتیل که مردم برن سفر و به خصوص تهران رای ندن هم سر گرمی ها لاز عجب باله شیطون ملایی یعنی اینه خب دیگه چی هم کاره گرمی؟ والا مسئله بلی اینه که هم کاره گرمی ظاهران اینا در حال خب. تا جمعیت زیادی رو از شهرهای دیگه بیارن تهران تا رای بدن جانم علو از... چی شد نه نه نه به خودم من که پولیس های سیدن نیست من خبرنگارم بگم علو دولم جانم... کجا بود و ای پول نهاره حجب پاکارن اینا علو چی شد درمکار گرمی علو والا دارم اینا بوجه جمع میکنن دیگه حالت گل بید بسیده کرد درمکار گرمی یه چیز؟ جان جان آقا من کار عجب... ن همکار گرامی چه خبری با ما توضیح بده چی شد گرامی اتوبوس گذاشتن میگن به زود یا سفر مهمون ما جانیم کجام جون من ای ای دیگه همکار گرامی من دیگه ظاهرم باید با شما خداحافظی کنا اومده ای بابا چی شد الو همکار گرامی ای با این رفت این رفت زیبا کنار ولی باب از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا هم نگه دار. این پیسری کجو کلی رفت رفت زیبا کنار داره بره و ما موندیم دور کنید تو